فما استمتعتم شوهردار بر شما حرام است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 و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهریه با یک دیگر توافق کنید بیگمان خداوند دانای حکیم است و من لم یستطع منکم طولاً این ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ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 پاک دامن باشند نه زناکار و نه آنان که در پنهانی دوست گیرند پس چون ازدواج کردند اگر مرتکب زنا شدند پس مجازاتشان نصف مجازات زنان آزاد است این اجازی ازدواج با کنیزان برای کسانی از شماست که از آلایش گناه بترسد و صبر و پاگ دامنی پیش کردن برای تان بهتر است و خداوند آموزنده مهربان است. یورید الله ليُبين لكم ويهديكم سننَ الذین من قبلكم ويتوب عليكم والله علیم حكيم. خداوند میخواهد که احکام خیش را برای شما روشن سازد. و شما را به راه و روش کسانی که پیش از شما بودند راهنمایی کند و خداوند دانای حکیم است والله الله یرید این یتوب عليكم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تميلوا میلا عظیما و خداوند میخواهد توبه شما را بپذیرد و کسانی که از های نفسانی پیروی میکنند میخواهند شما دست خوش انحراف بزرگی شوید. یرید الله ان یخفف خداوند میخواهد کار را بر شما سبک و آسان کند و انسان زائف و ناتوان آفریده شده است. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم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 و شما را در جایگاه خوبی وارد می‌کنیم. ولا تتمن ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من مكتسب وللنساء نصيب من مكتسب واسأل الله من فضله <تصفيق> اِنَّ الله را که خداوند بدان بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری بخشیده است آرزو مکنید برای مردان از آنچه به دست آورده اند بحری و برای زنان نیز از آنچه به دست آورده اند بحری و از خداوند از فضل و بخشش او بخواهید بیگمان خداوند بر هر چیزی داناست و لكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا و ما براي هر کس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 واللاتي تخافون نشوزهن فعذبهن واهجرنهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تظلمو عليهن سبيلا ان الله كان علييا كبيرا مردان برزنان سرپرست و نگهبانند به خاطر آنکه خداوند برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و نیز به خاطر آنکه از اموالشان خرج می کنند. پس زنان صالح فرمانبردارند بردارند و به پاس آنچه خدا برای آنان حفظ کرده اسرار و حقوق شوهران خود را در غیبت آنان حفظ می کنند و زنانی را که از نافرمانی آنها بین دارید پند و اندرزشان دهید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 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ, أهله من أهلها إن يريدا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا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 و بردگانی که مالک آنها هستید نیکی کنید بیگمان خداوند کسی را که متکبر و فخر فروش است دوست نمی دارد الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا الله اللَّهُ مِنْ فضله و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا <تصفيق> کسانی که بخل میبرزند و مردم را به بخل وامیدارند دارند و آنچرا که خداوند از فضل خیش به آنها داده کتمان می و برای کافران عذابی خار کننده آماده کرده ای. وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ ولا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا باليوم الْآخِرِ ومن يكن الشَّيطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا و نیز برای کسانی که اموالشان را برای نشان دادن به مردم انفاق می کنند و به خدا و روز آخرت ایمان ندارند و کسی که شیطان همدم او باشد چه بد همدمی است و ماذا عليهم لو آمنوا بالله والیوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما و اگر آنها به خدا و روز آخرت ایمان می‌آوردند و از آنچه خدا به آنان روزی داد انفاق می‌کردند چه زیانی برای آنان داشت و خداوند به آنها داناست این الله لا یظلم مثقال ذره و ان یضاعفها و من لدنه اجرا عظیما خداوند اندازی ذره ای ستم نمی کند و اگر کار نیکی باشد آن را دوچندان می کند و از نزد خود پاداش بزرگی عطا می کند فکیف اذا جئنا من كل امت بشهید وجئنا بك عليها اولی شهیدا پس چگونه است حالشان آنگاه که از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر اینان گواهاوریم یومئذ یودلذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا آن روز کسانی که کافر شدند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 حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَاءُ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطَ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا أولا مستمو النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم وأیدیكم إن الله كان عفوا غفورا ای كسانی كه ایمان آوردهاید در حال مستی به نماز نزدیک نشوید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 خداوند بخشنده آمرزنده است الم تر الی الذین أوتوا نصیبا من الكتاب یشترون الضلالة ویریدون أن تضلوا آیا ندیدی کسانی را كه بهرهای از کتاب به آنها داده شده است گمراهی را میخرند و میخواهند شما گمراه شوید والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا و خداوند به دشمنان شما داناتر است و کافی است که خدا سرپرست شما باشد و کافی است که خدای شما باشد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 ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله ولاكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا برخی از یهود کلمات خدا را از جای خود تحریف می میگویند شنیدیم و نافرمانی کردیم و نیز میگویند گویند بشنو که هرگز نشنوی و از روی تمسخر میگویند راعنا تا با پیچانیدن زبان خود به دین اسلام تقنه بزنند ولی اگر آنها میگفتند شنیدیم و اطاعت کردیم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 يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ اَدْبَارِهَا اَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ اَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولَهُ ای کسانی که کتاب آسمانی به شما داده شده است به آنچه بر پیام بر خود نازل کردیم و تصدیق کننده همان است که با شماست ایمان بیاورید پیش از آن صورتهایی را محو کنیم آنگاه آنها را به پشت سرباز گردانیم یا آنها را لعنت کنیم همانگونه گونه که اصحاب شنبه گروهی از یهود کنافرمانی کردند و در روز شنبه ماهی گرفتند را لعنت کردیم و فرمان خدا انجام شدنی است این <تصفيق> الله لا يغفر ان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 یقینا گناهی بزرگ بر است. آلم ترا إلى الذين يزكون أنفسهم بل لله يزكي من يشاء ولا يظلم فتيلا آیا ندیدی کسانی را که خیش را پاک میشه مارند بلکه خدا هر کس را بخواهد پاک میگرداند؟ و به آنها اندازه نخ روی هستی خرمایی ستم نمیشوند. شوند. انظر الله الكذب وكفا به ببین چگونه بر خدا دروغ میبندند و همین کافی است که این گناه آشکاری باشد. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ آُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا آیا ندیدی کسانی را که بهرهای از کتاب آسمانی به آنان داده شدند به جبت و تاقود ایمان میآورند؟ و درباره کسانی که کفر ورزیده اند اینان از کسانی که ایمان آورده اند هدایت یافته ترند اولائی الله و یلعن الله فلن تجد له نصیرا آنها کسانی هستند که خداوند لعنتشان کرده و هر کرا خدا لعنت کند هرگز برای او یا بری نخواهی یافت ام لهم نصیب من الملك فإذا لا یؤتون الناس نقیرا. آیا آنها بهرعی از فرمانروایی و حکومت دارند؟ پس در این صورت به اندازه پوست هسته خرمایی به مردم نمیدادند دادند؟ ام یحسدون الناس علا ما آتاهم الله من فضله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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نرا سوف نصليهم عن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما بيغمان کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند به زودی آنها را در آتشی سوزان وارد میکنیم که هرچه پوستشان بریان گردد پوست های دیگری به جایش قرار دهیم تا طعم عذاب را بچشند حقا که خداوند توانمند حکیم است و الذين امنوا الصالحات سندخلهم جنات و جنات تجری من تحتها ها الانهار خالدین ابدا لهم فی ها ازواج مطهره و ظلا ظلیلا و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به زودی آنها را به باقهای از بهشت وارد می که از زیر درختان آن نهرها است همیشه در آن خواهند ماند و در آنجا همسران پاکیزه دارند و آنان را به سایه های گسترده در آوریم.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 ألم تَرَ إلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ یریدون ان یتحاکمو الى الطاغوت و قد عمرو ان یکفرو بهی و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا آیا ندیده ای کسانی را که گمان میکنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان آورده اند ولی میخواهند برای داوری نزد تاقود بروند با آنها که به آنها دستور داده شده که به او کفر برزند و شیطان می خواهد گمراهشان کند و به گمراهی دوری بیفکند وإذا قیل لهم تعالوا الی ما أنزل الله والی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنك صدودا و چون به آنها گفته شود به سوی آنچه خداوند نازل کرده و به سوی یانبر بیایید منافقان را میبینی که از تو سخت روی میگردانند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 بیگمان تو به پذیر مهربان می آفتدند. فلا لا یؤمنون حتّى يحكمو كفى شجر بينهم ثم لا يجدو ثم لا يجدو في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمو تسليما نه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 وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ قْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ ما فعلوه, مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ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 وإذ آتناهم مدجان عظما و در این صورت از جانب خود پاداش بزرگی به آنها میدادیم ولا هدنا هم سرظم و به راه راست هدایتشان می کردیم.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 و حسون اولائی رفیقان و کسی که خدا و پیام بر را اطاعت کند روز قیامت همنشین کسانی خواهد بود که خداوند آنان انعام نموده است از پیام بران و صدیقان و شهدا و صالحان و اینان کو رفیقانی هستند لَكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا این فضل و بخشایش از جانب خداست و کافی است که او داناست يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَبِراستي از میان شما کسی است که از شرکت در جهاد سستی میکند. پس اگر مصیبتی به شما برسد میگوید خداوند بر من انعام کرد که با آنان حاضر نبودم وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ ليقولن, لَيَقُولَنَّ كَأَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ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 فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبَ فَسَوْفَ أَجْرًا عظيمة. پس کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروختند اند باید در راه خدا پیکار کنند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 الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القریة الظالم أهلها واجعل لنا, لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا و شما را چه شده است که در راه خدا و مردان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 والذنا كفروا قاتلون في سب الطاغوت فقاتلوا رو الشبان ان كند الشباني كان مععرففه کسانی که ایمان آورده اند در راه خدا پیکار میکنند و آنان که کافرند، در راه تاغود پیکار می کند. پس شما با یاران شیطان پیکار کنید قطعا نیرنگ و نقشی شیطان ضعیف است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 چرا ما را تا زمانی نزدیک مهلت ندادی؟ بگو مطاع دنیا ناچیز است و سرای آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است به اندازی رشته ای به شما ستم نخواهد شد اینما تکونو یدرکم الموت ولو كنتم في بروج مشیده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 سخنی را کنند ما أصابك من حسنه فمن الله وما أصابك من سیئه فمن نفسك وارسلناک للناس رسولا وكفى بالله شهيدا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 فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا آیا در قران نمی اندیشند که اگر از سوی غیر خدا بود قطعا اختلاف بسیار در آن می یافتند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 فضل و رحمت خدا بر شما نبود جز اندکی از شیطان پیربی می کردید فقاتل فی سبیل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين ظلمؤمنین عس الله این یکف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا و اشد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 الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله معبودی جزءو نیست و یقینا همه شما را در روز قیامت که شکی در آن نیست جمع می کند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 و بکشید و از میان آنها یارو یا وری اختیار نکنید. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مثال أو جاءكم حصرت صدورهم <سطور> أي يقاتلوكم أو قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقىوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا مگر ان هائئ با هم پیمانان شما پیمان بستند یا ان هائئ به سوی شما میآیند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 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآهِ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ وَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ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 و غضب الله عليه و ولعنه واعد له عذابا عظیما و هرکس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند کیفرش دوزخ است که در آن جاودانه میماند و خداوند بر او غضب میکند و او را از رحمتش دور میسازد و عذاب بزرگی برای او آماده ساخته است يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقاا إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا اي کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که در راه خدا برای جهاد رهسپار شدید پس بررسی کنید و به کسی که بر شما سلام کرد نگویید مؤمن نیستی تا اینکه که سرمایه ناپایدار دنیا به دست آورید زیرا غنیمتهای بسیاری نزد خداست شما نیز پیش از این چنین بودید آنگاه خداوند بر شما منت گذارد بنابر این بررسی کنید که هر آین خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة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 و کان الله غفورا در بهشت از جانب خداوند و آمرزش و رحمت نصیب آنان می‌گردد و خداوند آمرزندی مهربان است این الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ اَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَكُنْتُمْ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا همانا كساني كه فرشتگان جانشان را گرفتهند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 إلا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيله. مگر آن مستضعفان از مردان و زنان و کودکانی که نچارعی دارند و نراهی میابند اولئک عصى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورا پس اینان را امید است که خداوند از ایشان درگذرد و خداوند بخشاینده آمرزنده است و من مهاجر فی سبیل الله يجد في الأرض مرغما کثیرا وسعه و من يخرج من بيته مهاجرا الى الله و ثم يدركه الموت ثم يدرکه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفوراً رحیماً و کسی که در راه خدا هجرت کند در زمین جاهای امن فراوان و گشایش یابد و کسی که به قصد هجرت به سوی خدا و پیام برش از خانی خود بیرون رود آنگاه مرگش فرا رسد قطعا پاداشش بر خداست و خداوند آمرزندی مهربان است و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصرو من الصلاة ان خفتم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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِلَىٰ سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا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 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا پس چون نماز را به پایان رسان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 القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما يقينا إن كتاب را بحق بر نازل كرديم تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم داوری کنی و مدافع خائنان مباش و, الله این الله كان غفورا و از خداوند آمرزش بخواه حقا که خداوند امورزنده مهربان است ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا اثیما. و از کسانی که به خود خیانت کردند دفاع مکن یقینا خداوند افراد خیانت پیش یک را دوست ندارد. یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا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 که وکیل و حامی آنها خواهد بود و من يعمل أن او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور الرحيم و کسی که کار بدی انجام دهد یا بر خیشتان ستم کند پس از خداوند آمرزش بطلبت خدا را آمورزندی مهربان خواهد یافت و من یکسب اثما فا انما یکسبهو علا نفسه و کان الله علیما حکیما و هر کس گناهی مرتکب شود پس تنها به زیان خود مرتکب شده است و خداوند دانای حکیم است و می یکسب خطیأ او اثما ثم می به بريئا ثم می به بريئاً فقد احتمل بهتانا او مبينا به هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود سپس بیگناهی را به آن متهم کند، قطعا بار بهتان و گناه آشکاری را بردوش گرفته است. ولولا فضل الله عليك و رحمته لهم الطائفة منهم أي يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب و وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما واگر فضل خدا و رحمتش شامل حال تو نبود هر آینه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 لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما درب سياري از نجواهایشان خیرنی نیست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 و ا را ب جهنم درفکنیم و بد جایگاهی است الله لا يغفر أي يشرك به و یغفر ما دون ذلك لمن يشاء و من بالله فقد ضل ضلالا بعیدا شرک آوردن به او را نمی آمر زد و جز آن هر گناهی را برای هر که بخواهد می و هر کس به خدا شرک آورد پس بدون شک در گمراهی دوری افتاده است. ای یدعون من دونهی ایلا ثو و این یدعون و این یدعون الا شیطانا مشركان جز خدا چیزها ماده را می و در حقیقت جز شیطان سرکش را نمی خانند. لعنه الله وقال قال لأتخذن من عبادك که نصیبا مفروضا خداوند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 ولا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا و مسلمن آنها را گمراه می و آنان را به آرزوهای باطل افکنم و به آنان دستور میدهم. که گوش چهار پایان بشکافند و وادارشان میکنم تا خلقت و آفرینش خدا را تغییر دهند و هر کس شیطان را به جای خدا ولی و دوست خود بگیرد قطعا زیانی آشکار کرده است وما <تصول> <سؤال> <صول> <سؤال> <صول> <صول> <صول> شیطان به آنها وعده می‌دهد و آنان را به آرزو افکند و شیطان جز فریب و باطل به آنان وعده نمی دهد جهنم عنها محیصا. آنها جایگاهشان جهنم است و هیچ راه فراری از آن نخواهند یافت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 و کسانی که ایمان آبرده اند و کارهای شایسته انجام داده اند به زودی آنان را در باغهایی از بهشت وارد می‌کنیم که نهرها از زیر درختان آنجاری است جاودانه آن خواهند ماند بعدی خدا حق است و کیست که در گفتار از خدا راست گوتر باشد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 ومن من احسن دینا من, من اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا و چه کسی نیک آین تر است از کسی که روی خود را به خدا سپرد و نیکوکار بود و آیین پاک ابراهیم را پیروی کرد و خداوند ابراهیم را به دوستی خود برگزیده است ولله ما فی السماوات وما فی الارض و وكان الله بكل شیء محیطا و آنچه در ها و آنچه در زمین است از آن خداست و خداوند به هر چیزی اهات دارد. ويستفتون ك في النساء قل الله يفتيكم فيهن و ما يطلع عليكم في الكتاب فيه تمن النساء في يتام النساء اللتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط و ما تفعلو من خیر فا الله كان به علیما. از تو ای پیامبر درباری زنان فتوا میخواهند خداوند درباری آنان به شما فتوا می دهد. و همچنین آنچه در کتاب بر شما خانده می شود باری زنان یتیمی که آنچه را که برای آنان مقرر شده است به آنها نمی دهید و میخواهید که با آنها ازدواج کنید. و نیز به شما توصیه می کند و فتوا می دهد در مورد کودکان صغیر ناتوان و اینکه با یتیمان به عدالت رفتار کنید و آنچه از نیکیها انجام می دهید خداوند به آن آگاه است.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 و پرهیزگاری گاری پیش سازید قطعا خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است الا تستطيع ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل المیل فتدروها كالمعلقہ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 خداوند آمرزندی مهربان است یتفرقا یغنی الله كل ساعتی کان الله واسعا حکیم و اگر آن دو از یک دیگر جدا شوند خداوند هر کدام از آنها را با فضل و کرم خود بینیاز می کند و خداوند گشایشگر حکیم است.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 بینیاز و ستوده است. واللهم ما فی السماوات وما في و وكفى بالله وکیله و با آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و خداوند برای کارسازی کافی است.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 ای کسانی غنيا ایمان فقيرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا تعدلوا تعرضوا الله كان بما تعملون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 و حق را تحریف کنید یا از اظهار حق اعراض کنید مسلما خداوند به آنچه می می‌دهید آگاه است. یا ایّه الذين آمنوا آمنوا بالله و والكتاب الذي نزل على رسوله وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي اَنْزَلَ مِن قَبْلِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَانً بَعِيدًا ای کسانی که ایمان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 ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا هم كانوا كسان ایمان آورده اند سپس کافر شدند باز ایمان آورده سپس کافر شدند آنگاه بر کفر خود افزودند خداوند هرگز آنان را نخواهد بخشید و آنها را به راه راست هدایت نخواهد کرد بشر المنافقین بان لهم عذاباً به منافقان بشارده که برایشان عذابی دردناک است الذين يتخذون الكافرين أولیاء من دون المؤمنین أیبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جمیعا آنانكه كافران را بهجای مؤمنان به دوستی برمیگزینند آیا به نزد آنان عزت میجویند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 الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألمكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم استحذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا قامو كسال يراآن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلات منافقان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 منافقان بین این دو گروه مؤمنان و کافران دو دل و سرگشتهاند نه با اینانند و نه با آنانند و هر کس را که خداوند گمراهی کند راهی برای او نخواهی یافت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 در پایین ترین طبقه آتش جهنم هستند و هرگز یاوری برای آنها نخواهی یافت إلا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فاولائك فاولائك مع المؤمنين. و سوق الله أجرا مگر آنان که توبه کردند و جبران و اصلاح نمودند و به خداوند تمسک جستند و دین خود را برای خدا خالص گرداندند پس اینان با مؤمنان خواهند بود و خداوند به زودی مؤمنان را پاداش بزرگی خواهد داد ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامننتم وكان الله شاكرا علیما خدا چه نیازی به عذاب دادن شما دارد اگر گذاری کنید و ایمان آورید و خداوند شکرگزار داناست